مصنوی معنوی مولوی برنامه چهارم بیان آن که این اختلافات، در صورت روش است، نه در حقیقت راه. اوز یک عیسی ایسا بو نداشت و از مزاج خم ایسا خو نداشت جامعه صدرنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون سبا نیست یا رنگی که زوخی زد ملال بل مثال ماهی و آب زلال گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست ماهیان را با یوبوست جنگ هاست کیست ماهی چیست دریا در مثل تا بدان ماند ملک از جل. صد هزاران بهر و ماهی در وجود سجده آرد پیش آن اکرام وجود چند باران عطا باران شده تا بدان آن بهر در افشان شده چند خورشید کرم افروخته تاکه ابر و بحر جود آموخته پرتو دانش زده بر آب و تین تا که شد دانه پذیرنده زمین خاک امین و هرچه در وی کاشتی بی خیانت جنس آن برداشتی این امانت زان امانت یافته است کافتاب عدل بر تافت است تا نشان حق نیارد نوبهار خاک سرها را نکرده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 هر کجا گوش بود از وی چشم گشت هر کجا سنگ بود از وی یشم گشت کیمیا ساز است چه بود کیمیا معجزه بخش است چه بود سیمیا این سنا گفتن زمن ترک سناست کی کین دلیل هستی و؟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 بر نبوده او کبود از تازیات کیف سردی همچوی یخ این ناحیت بیان خسارت وزیر در این مکر همچو نادان و غافل بود وزیر پنجه می با قدیم ناگذیر، با چنان قادر خدای کس ادم صد چو عالم هست گرداند بدم. صد چو آلم در نظر پیدا کند، چون که چشمت را به خود بینا کند. گر جهان پیشت بزرگ و بیبونیست، پیش قدرت ذره میدان که نیست. این جهان خود حبس جانهای شماست، هین رویدان که صحرای شماست. این جهان محدود آن خود بهد است، نقش و صورت پیش آن معنی صد است. صد هزاران نیزه فرعان را در شکست از موسیه با یک عصا صد هزاران طب جالینوس بود، پیش ایسا و دمش افسوس بود. صد هزاران دفتر اشعار بود. پیش حرف امی آن آر بود. با چون این غالب خداوند کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. بستله چون کوه را انگیخت او مرغ زیرک با دو آویخت او فهم خاطر کیس کردن نیست راه جز شکسته می نگیرد فضل شاه ای بسا گن جاگنان کنشکاو کان خیالنده را شد ریش گاو گاو که بود تا تو ریش او شوی خاک چه بود تا هشیش او شوی چون زن از کار بد شد روی زرد مسخ کردو را خدا و زهره کرد. عورتی را زهره کردن مسخ بود. خاک و گلگشتن گشتن نمسخ روح می بردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفول. زان وجودی که بود، آن رشک قول، پس ببین که این مسخ کردن چون بود پیش آن مسخ این بغایت دون بود از به همت سوی اختر تاختی آدم مسجود را نشناختی آخر آدم زاده ای اینا خلف چند پنداری تو پستی را شرف چند گویی من بگیرم عالمی. این جهان را پر کنم از خود همه گر جهان پر برف گردد سر بسر تا به خور بگدا زدش با یک نظر وزر او و صد وزیر و صد هزار نیست گرداند خدا از یک شرار عین آن تخییل را حکمت کند این آن زهراب را شربت کند آنگمان انگیز را سازد یقین، مهرها رویاند از اسباب کین، پرورد در آتش ابراهیم را، ایمنی روح سازد بیم را، از سبب سوزیش من سوداییم، در خیالاتش چو صوفستاییم، مکر دیگر وزیر در ازلال قوم مکر دیگر آن وزیر از خود ببست وعز را بگذاشت و در خلوت نشست در مریدان در فگند از شوق سوز بود در خلوت چهل پینجاه روز خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و ذوق او. لابه و زاری همه کردند او، از ریاضت گشته در خلوت تو. گفته ایشان نیست مارا بی تو نور، بی اساکش چون بود احوال کور، از سر اکرام و از بهره خدا بیش از این ما را مدار از خود جدا. ما چو ما را دایتو. بر سر ما گستران آنسایتو. گفت جانم از محبان دور نیست. لیک بیرون آمدن دستور نیست. آن امیران در شفاعت آمدند، وان مریدان در شناعت آمدند. چه بدبختی است ما را ای کریم، از دلودین و دین مانده ما بی تو یتیم. تو بهانه می کنی و ماز درد می زنیم از سوز دل دمهای سرد. ما با گفتار خوشت خو کرده ایم، ما شیر حکمت تو خورده ایم، الله الله این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن، میدهد دل مرتو را کین بی دلان، بی تو گردند آخر از به حاصلان، جمله در خشکی چو ماهی می تپند، آب را بکشاز جو بردار بند. ای که چون تو در زمانه نیست کس، الله الله خلق را فریاد رس گفتن وزیر موریدان را گفت هانهی سخرگان گفتگو و از و گفتار زبان و گوش جو پنبند در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید پنبه آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن باطن است، به حس و به گوش و به فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید تا به گفتگوی بیداری دری توز گفت خواب بوی کیبری. بری سیر است قول و فعل ما سیر باطن هست بالای سما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 موج دریا را کجا خواهی شکافت موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست موج آبی محو و سکر است و فناست تا در این سکری از آن سکری تو دور تا از این مستی از آن جامی تو کور گفتگوی ظاهر آمد چون غبار مدتی خاموش خو کن وشدار مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن جمله گفتند ای حکیم رخنجو این فریبو این جفا با ما مگو چارپا را قدر طاقت بارنه بر ضعیفان قطر قدر قوت کارنه دانه هر مرغ اندازه ای است تومه هر مرغ انجیر کی است تفل را ګر بر جای شیر تفل مسکین را از آن نان مردگیر چون که دندان ها برارد بعد از آن هم به خود گردد دلش جویای نان مرغ پر نارسته چون پرران شود لقمه هر گربه دران در شود چون برارد پر بپرد او بخود بی تکلف بی سفیر نیک و بد دیو را نطقتو خاموش می کند گوش ما را گفته تو حوش می کند گوش ما هوش است چون گویا تویی خشک ما بحر است چون دریا تویی با تو ما را خاک بهتر از فلک ای سماک از تو منور تا سمک بی تو ما را بر فلک تاریکی است با تو ای ماه این فلک باریکی است صورت رفعت بود افلاک را معنی رفعت روان پاک را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 متهم نبود امین گر بگویم آسمان را من زمین گر کمالم با کمال کار چیست ورنیم این زحمت و آزار چیست من نخواهم شد از این خلوت برون زان که مشغولم به احوال درون اعتراض مریدان در خلبت وزیر جمله گفتند ای وزیر انکار نیست. گفت ما چون گفتن اغیار نیست. اشک دیده است از فراق تو دوان. آه آه است از میان جان روان. تفل بادایه نه استیزد ولیک. گرید و گرچه نه بد داند نه نیک. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی ما چو ناییم و نوا در ماز توست. ما چو کوهیم و صدا در ماز زتوست ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ما توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان ما آدم و هستی های ما تو وجود مطلق فانی ما ما هم شیران ولی شیر عالم حملشون از باد باشد دم بدم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 لذت انعام خود را وامگیر نقل و باده و جام خود را وامگیر ور کیت جست و جو کند نقش با نقاش چون نیرو کند من گر اندر ما مکن در ما نظر اندر اکرام و سخای خود نگر ما نبودیم و تقاضا نبود لطف تو ناگفته ما می شنود نقش باشد پیش نقاش و قلم عاجز و بسته چو کودک در شکم پیش قدرت خلق جمله بارگه عاجزان چون پیش سوزن کارگه گاه نقشش دیو و گه آدم کند گاه نقشش شادی و گه غم کند دست نه تا دست جنبانت دفع نطق نه تا دم زند در زر و نف توز قرآن باز تفسیر بیت گفت ایزت ما از رمیت از رمایت گر به تیر آن نیز ماست ما کمان و تیر اندازش خداست این نجبر این معنی جباری است ذکر جباری برای زاری است زاری ما شد دلیل استرار، خجلت ما شد، دلیل اختیار گر نبودی اختیار، این شرم چیست؟ ویندریغ و خجلت و آزرم چیست؟ زجر شاگردان و استادان چراست؟ خاطر از تدبیرها، گردان چراست؟ ورتوگویی غافل است از جبر او ماه حق پنهان کند در ابر رو هست این را خوشجواب ار بشنوی بگذری از کفر در دین بگروی حسرت و زاری گه بیماری است وقت بیماری همه بیداری است آن زمان که می شوی بیمار تو می کنی از جرم استخفار تو می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که بازایم بره اهد و پیمان می کنی که بعد از این جز که تاعت نبودم کار گزین پس یقین گشت این که بیماری تو را می ببخشد هوش و بیداری تو را پس بدان این اصل را ای اصل جو هر که را درد است او بردست است بو هر که او بیدارتر تر پردر هر که او آگاهتر تر گرز جبرش آگهی زاریت کو. بینش زنجیر جباریت کو. بسته در زنجیر چون شادی کند. که اسیر از حبس آزادی کند. ور تو میبینی که پایت بستند. بر تو سرهنگان شه بنشستند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان که نبود تب و خوی عاجز آن چون تو جبر او نمیبینی مگو ور همی بینی نشان دید کو در هر آن کاری که میلستت بدان قدرت خود را همی بینی آیان ون در آن کاری که میلت نیست و خواست خیش را جبری کنی که از خداست انبیا در کار دنیا جبری اند کافران در کار عقبا جبری اند انبیا را کار عقبا اختیار جاهلان را کار دنیا اختیار زان که هر مرغ سوی جنس خیش میپرد او در پسو جان پیش پیش کافران چون جنس سجین آمدند سجن دنیا را خوشاین آمدند انبیا چون جنس الین بودند سوی الین جان و دل شدند این سخن پایان ندارد لیک ما بازگوییم آن تمام قصه را نومید کردن وزیر مریدان را از رفس خلوت آن وزیر از اندرون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 الودا ای دوستان من مردم رخت بر چارم فلک بر بردم تا بزیر چرخ ناری چون حتب من نسوزم در اناو در عتب پهلوی ایسا نشینم بعد از این بر فراز آسمان چارمین ولی عهد ساختن وزیر هر یک امیر را جدا جدا وانگهان آن امیران را بخند یک به یک تنها به هر یک هر فراند گفت هر یک را به دین عیسوی نائب حق و خلیفه من توی وان امیران دگر اطباع تو کرد عیسی جمله را اشیاء تو، هر امیر کوکشت گردن بگیر یا بکش یا خود همه دارش اسیر لیک تا من زنده این وا مگو تا نمیرم این ریاست را مجو تا نمیرم من تو این پیدا مکن دایی شاهی و استیلا مکن اینکین تو مار و احکام مسیح یک به یک برخان تو بر امت فسیح هر امیر را چونین گفت او جدا نیست نایب جستو در دین خدا هر یکی را کرد او یک یک عزیز هرچه آن را گفت این را گفت نیز. هر یکی را او یکی تومار داد، هر یکی زده دگر بود المراد. متن آن تومارها بود مختلف، چون حروف آن جمله یا از الف. حکم این تومار ضد حکم آن، پیش از این کردیم این ضد را بیان،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 کان عدد را هم خدا داند شمارد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند درمان جای خیش. جمله از درد و فراقش در فغان، هم شهان و هم مهان و هم کهان. آن خلایق بر سر گورش مهی کرده خون را از دو چشم خود، رحیم. برنامه های خانش متن کامل مثنوی معنوی مولانا را مینه و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردهاند این برنامه های نیمساعته هر سه شنبه ساعت ده و سی دقیقۀ شب به افغانستان روی موج می آید و پنجشنبه ها ده و سی دقیقه شب بازپخش می شود